سحیفه معرفت شرح دعای هفته سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه سوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی نبینا و آله تیبین تاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین گونه که مستحضرید در این سلسله مباحث با الهام از کتاب عظیم صحیفه سجادیه از مولایمون امام سجاد سلام الله علیه درسهای زندگی می در این رابطه که چه کنیم به عنوان انسان زندگی انسانی داشته باشیم حرکات ما، رفتار ما، خوی ما، منش ما، برخورد ما، با انسانهای دیگر رفتار و منش و خوی انسانی باشد دیدیم که امام سجاد علیه السلام در دعای هیوده همه صحیفه سجادیه با الهام از آیات قرآن کریم که آیاتش رو قبلن فشرده و مجملن اشاره کردم و بحث نمودم یکی از مهمترین عواملی که نفس انسان را آلوده می کند و در اثر آلودگی و بیماری نفس رفتار و حرکات این انسانها آلوده و بیمارگونه می شود نزق شیطان وسوسه شیطان نفوذ شیطان در قلب و دل انسان معرفی کردند و راه نجاتش رو هم باز با الهام از قرآن با علم امامتی خودشون برای ما توضیح فرمودن در ابتدای دعای هیبده به ما میآموزند اللهم اینا نعوز و بکم نزغات شیطان رجیم پس نزغات شیطان که توضیحش گذشت خطرناک است و باید به خدا پناه برد و کیدهی و هی مکاری های شیطان هیلگری های شیطان که با فریب و نیرنگ پیش میآید تا انسان ها را بفریبد باید این رو مهم جلوه داد و برای نجات از اینها به خدا پناه برد و منسقه به امانیهی امانی شیطان وعده های پوچ و اون امید و آرزوهای ناپسندی که قابل دلبستگی نیست ولی شیطان در ما ایجاد می کند تا به آنها اطمینان پیدا کنیم و بر اساس اطمینان به اون مطالب حرکت کنیم امام علیه السلام به ما آموختن برای نجات از این امور به خدا پناه ببریم و ادامه مطلب و موائیدهی و قرورهی و مساعده. مواعید جمع میعاد و مقصد است به معنی وعد و وعده دادن و ایجاد باز امید نمودن قرور هم ابهام نفع باز به معنی گول زدن است به این معنی چیزی که نفع ندارد ولی میکوشن طرف را بفریبن که گمان کند در اون نفع است این رو قرور میگن مثلا در قرآن کریم آمده است وقتی حضرت آدم عبالبشر و حضرت هوا همسرشون وارد بهش شدن و خداوند فرمود که از اون درخت نخورید شیطان قرورش را آغاز کرد فریب و نیرنگش را این فریب و نیرنگ شیطان چی بود در قرآن آمده است شیطان به حضرت آدم گفت حال ادلك على شجره الخلد میخوای تو رو دلالت کنم راهنمایی کنم به یک شجره ای، به یک درختی که اگر از این درخت بخورید جاودانگی و همیشگی برای شما حاصل خواهد شد خب این حرف دروغ بود ولی چون میخواست نفع به رخ حضرت آدم بکشد و گمان ایجاد کند که در این نفع است حضرت آدم هم اصلا تصور نمی کرد کسی دروغ بگوید یا اهل خیانت باشد خیال کرد که او راست می گوید. این عمل میشه غرور پس شیطان یکی از کارهاش غرور است یعنی اموری را نفع جلوه می دهد که در واقع نف نیست این نکته عزیزان بسیار مهم و ضریفه و واقعا نمیخوام از این نکته سری رد بشم لذا از نهج البلاغی مولا امیر سلام الله علیه جد بزرگوار امام سجاد علیه السلام در همین رابطه دو ستی که میخوام بخونم تا ببینیم چقدر این نزغ شیطان از طریق قرور و مواعید میتونه خطرناک باشه لذا به با عنوان نمونه در نهج البلاغی عنایت بکنید حکمت شماره 323 و بیست همین مطلبی که امام سجاد علیه السلام در دعای هیوده صحیفه به ما می آموزد که باید به خدا پناه ببریم از مواعید و قرور شیطان قرورم توضیح دادم ابهام و نفع یعنی چیزی را به شما دارای نفع نافع منفعت خیز معرفی میکنه ولی در واقع این نیست بلکه مضر است و چون انسان ها ذاتن این گونه آفریده شده اند جلب منفعت میکنند و دفع ضرر این واقعیتی است همه ما انسان ها چیزی را که دارای نفع و منفعت باشد دوست می داریم و می داشته باشیم چیزی را که برای ما مضر باشد منفعت نداشته باشه دفع میکنیم اما مشکل این امر است که خیلی وقتا اموری را دارای نفع میپذیریم و حال اینکه من منفعت نداره بلکه مذر است کار شیطان اینه یکی از موارد نزق شیطان که قرآن فرمود فست از بالله الله امام سجادم در این دعا تاکید کردند اللهم انا نعوذ و بکم نزغات شیطان یکی از موارد نزغ شیطان قرور شیطانیه یعنی میفریبد یک اموری رو دارای نفع جلوه می دهد ها رو به طمع و نفع وادار میکند به سراغ اون مطلب بروند و حال اینکه اگر دقیق بشوند سن منفعتی نداره در حکمت شماره سی و بیست و سی نهجل بلاغه نقل میکند امیر المؤمنین علیه السلام بعد از جنگ نهروان که میدانید دانید سلام سلامالله علیه در دوران چار سال خورده ای حدود پنج سال که خلافت ظاهری ایشون بود سه تا جنگ با ایشون را انداختند و چه عذیتها که در این جنگها به مولا نرسندن اولی جنگ جمل بود که آیشه و تلحب و زبیر سردمداران این جنگ بودن در بسره خونریزی را انداختند و اون جنگ کذایی رو بر مولا تحمیل نمودن دومی جنگ سفین بود که معاویه راه انداخت و عده ای را در این جنگ به کشتن داد یاران زیادی از امیر به شهادت رسیدند. طبق نقل تاریخ هیفده تن از صحابی پیغمبر در جنگ بدر که باقی منده بودن و هنوز زنده بودن در دفاعی از امیر در رکاب مولا در اونجا شهید شدند که یکیش جناب امار یاسره این همه بزرگان و در این جنگ چلت هماتی به مسلمین زدن خدا میداند که ادهی ای در این جنگ بر مبنای اون کار ابو موسی اشعری و اونگونه عمل کردن دشمنان خارجی شدند در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند جنگ خوارج یا نهروان رو با مولا را انداختند بعد از اینکه جنگ تمام شد عده‌ای از خوارج کشته شدند در این حکمت شماره 323 داره و قدمر به قتل خوارج من النهروان امیرالمؤمنین علیه السلام از کنار کشته شده های نهروان داشتن عبور میکردند نگاهی به این کشته شده کردند این عبارت رو فرمودند و اوسن لکم حال شما وای بر شما لقد ذرکم ذر من قرکم قر به این نکته عنایت کنید در توضیح اون بیانی که مولا در صحیفه داره این عبارته کنارش بگذاری چقدر زیبا میشه لقد ذرکم ذر همانا زرر زد به شما شما رو به zarar رو زیان و خسران و نابودی کشون من کسی که غر رکم، شما را فریفت خب یعنی حضرت وقتی داره به کشته شده های جنگ خوارج میفرماید به شما زرر زد منفعت برای شما درست نکرد کی من غر رکم کسی که شما رو گول زد یعنی شما را با امید منفعت کشون میدون اما شما منفعت نبردید شما همه ضرر کردید این کار منفعت نبود کسانی که این سخن را می شنیدن فقیلهو ارس کردن به امیرالمؤمنین من یا رحم امیر یا امیرالمؤمنین آقاجون یا امیرالمؤمنین چه کسی اینا رو گول زد منظور شما از این من قرکم کیه چه کسی بوده که به اینها فریب و نیرنگ زده فقال الشیطان المذل فرمود شیطان گمراه و گمراه کننده شیطانی که به زلالت میندازه پس طبق بیان امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت 323 یکی از کارهای شیطان قروره قرور هم این فریب و نیرنگ یعنی ابهام نف می مطلبی که نفع نیست در نظر اونها نف جلوه میدهد تا فریفته بشن و جلو بیان لذا حضرت فرمودند از شیطان المزل ول عماره به سو این انفس اماره به سو یعنی نفس های به سو یعنی نفس تحت تأثیر نیرنگ و هیله و نزغ شیطان عماره به سو شد و حال اینکه نفس میتوانست چی بشه نفس میتوانست مطمئن بشه اگه نفس مطمئنه بود چه میشد یا ای مطمئن نه. ارجعی الارب که راضیتا مرزیه فتخلیفی عبادی نفس میتونه مطمئنه باشه اوج بگیره به طرف عالم اعلا پرواز کنه ملکوت رو ببینه نفس ملکوتی افعال ملکوتی دارد سخنان ملکوتی میگوید آثار ملکوتی ایجاد میکنه ولی وقتی نفس اماره به سو شد خب اماره سیغه مبالغه از کلمه امره یعنی خیلی شدید داره امر میکنه به شدت وادار میکنه به سو به اعمال بد چرا نفس اماره شد برای اینکه شیطان گولش زد برادر من و خواهر من این نکته رو در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به ما یاد میدن پیگیری کنیم اگر ما نفسمون را در اختیار شیطان گذاشتیم اگر در مقابل نزغ شیطان به خدا پناه نبردیم بدانیم نفس ما اماره به سو می شود وقتی نفس اماره به سو شد اون وقت گرفتاری های دیگر پشت سرش خواهد آمد که اگر بخوام وارد اون بحث بشم دیگه طولانی می شود فقط این نکتر رو اشاره کردم از مولا که در ادامه در این حکمت میفرمایند فرماین هم بل امانی همین کلمه امانی رو هم اینجا هم امیر المومنین آوردن یعنی یه امیدهای پوچ و واهی یه خیالاتی رو برای اونها جلوه میده به گمان اون فواید حرکت میکنن و پیش میروند بعد از واقعه کربلا در تاریخ نقل شده برخی افراد عامی لشکر ابن زیاد رو در کوفه می دیدن که اینا تو کوچه ها میرفتند میگفتن وا حسرتا میگفتن حسرت از چی گفت برای اینکه ابن زیاد به ما وعده داده بود حالا رقم یادم نیست در تاریخ مثلا 20 درحم به ما بدهد ما برویم به جنگ ابی عبدالله و برگردیم ما 20 درحم رو گرفتیم و برگشتیم ولی خرج ما 25 درحم شد ما ضرر کردیم ببینید وقتی فکر بشر انقدر سقوط میکند حالا این از دید مادی نگاه میکنه حتی از دید مادی اگر به نفعش به خاطر منفعت چند درهم حرکت کرده است میبینه اون مقداری که بنابود از این دراهم گیرش بیاد نیومد حالا میگه وا حسرتا ولی انسانی که به نفس انسانیش توجه میکنه نفس من بنابود مطمئن نشود به امید لقاع رب حرکت کنم اما تحت تأثیر نزغات شیطان و امانی پوچ او به وادی افتادم که بر مبنای اون وادی حسرتی برای من باقی ماند که نفسم به جای اون ارزش ها چه شد شد نفس شیطانی که اماره به سو باشد اون وقت در خطبه هفت نهجل البلاغه مولا همین مطلب رو اینگونه برای ما بیان می کند پیروان شیطان کیا هستند؟ اتخذ شیطانه لامرهم ملاکا اینا شیطان برای کارهای خودشون ملاک گرفتن و اتخذ لهو اشراکا اگر اشراک رو جمعه شرک بگیریم به معنی دام می شود اگر جمع شریک بگیریم به معنی شریکان که معمولا اینجا این رو به معنی دام می گیرند گونه که سیاد مثلا ماهی دامی درست می کند می اندازد که این ماهی ها در این دامش گیر کنند بیان می و هم لهو اشراکا شیطان رو شیطان این اده را دامی قرار میده برای سید کردن خودش یعنی اگر امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه سجادیه به ما می آموزد اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان امیر امیرالمؤمنین در این درس رو به ما میده اگر کسانی شیطان رو ملاک کار خودشون قرار بدن شیطان بتواند نزق کند در نفسشون اینا تازه میشن دام برای شیطان که شیطان به کمک اینها یه عده دیگر رو هم تو دام بندازه فباظه و فرخه فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم خطبه هفت نرج البلاغه شیطان میبینه اینها خیلی آمادن در قلب و سینه اینا مثل پرنده‌ای تخم میزاره. اونجا رو لانه میکنه که تخماش در اونجا به جوجه تبدیل بشن و اینا رو میده از اینجا زمینه انحراف دیگران رو هم فراهم میکنه بین این نکته عنایت بکنید خیلی نکته عجیبیه وقتی مولا میفرماید شیطان در یک سینه نفوذ کرد مثل مرغی پرنده‌ای که یه جا لانه گذاشته تخم میذاره اگر جایی امکان توقف نباشه آرامش در اونجا و اطمینان برای ادامه نباشه خب پرنده در اونجا تخم نمیکنه. نمی کنه نمیتونه تبدیل به جوجه کنه یه جایی رو لانه خودش قرار میده که مطمئن باشه این لانه محفوظه و تخم تبدیل به جوجه میشه انقدر سینه و قلب کسانی که برای نزغ شیطان آمادگی دارن و فریب امانی شیطان رو می خورن فریب مواعد شیطان رو می‌خورن، فریب غرور و نیرنگ شیطان رو می‌خورن. آمادگی نشون می که شیطان میگه جای خوبی برای تخگذاری و لانه است که در اونجا بتوانند چه بکنن؟ بتوانند اون اهداف شیطانی خودش رو پیاده کنه تا از این طریق دیگران رو هم بفریبه حالا به صحیفه سجادیه برمیگردیم امام سجاد علیه السلام دارن با خدا این گونه سپند میکنن خدایا به تو پناه میبریم از چی؟ و من از سقته به امانی امانیهی نکنه اطمینان پیدا کنم این امانی که شیطان ایجاد میکنه این امیدهای پوچی که به من میده به اینا اطمینان پیدا کنم و مواعیدهی و هایی که شیطان میده نکنه این وعده ها در نظر من جلوه کند و قرورهی این ابهام نفعی که شیطان ایجاد میکنه مثلا در ذهن کسی وسوسه میکنه اگه دنبال این شهوت رفتی ارضا میشی اگه دنبال پول رفتی پولدار میشی اگه دنبال این دوست ناباب رفتی این فایده برای تو ایجاد میشه و حال اینکه اگه انسان دقیق بشه رفتن دنبال اینها مساویس با ارزش انسانیت رو از دست دادن به قول شاعر چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی یا از دید دیگر اگر در مقابل شیطان معرفتش رو بالا برده قرور شیطان در وجودش نمیتونه اثر کنه با کمال قدرت میسته و میگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند از آشیانه ما فریبی حرفا رو نمیخوریم لذا امام سجاد دارن بیان میکنن خدایا به تو پناه میبرم از چی مواعیدهی و قرورهی کلمه بعدی و مساعدهی مساعد باساد جمع مسیده مسیده وسیله و آلت سید رو میگن هر کسی وقتی میخواد سید کنه یک ابزاری در اختیار داره مثلا گاهی یک شکارچی ممکنه تفنگ داشته باشه یک شکارچی ممکنه دام داشته باشه یه شکارچی دانه میریزه تا در اثر فریب اون پرندگان به خاطر اون دانه ها که به سوی دام میاد بعد اینها رو بگیره مسیده اون وسیله است که در اختیار شکارچی قرار میگیره به وسیله اون عامل سید شکارش رو در دام خودش بندازه مساعد جمع مسیده حالا مسیده و مساعد شیطان چیه؟ شیطان چه ابزاری داره که به وسیله یا اون ابزار میخواد شکار کنه؟ شکار کردن شیطان چیه؟ فریب بنی آدم شیطانی ساختن نفس انسان نزق شیطانی در وجود انسان که گفتیم خب اون ابزاری که شیطان به کار میبره و اون به قول امام سجاد علیه السلام مسائدهی، مسائد شیطان مسیده شیطانی چیه؟ شهوات لذات دنیاوی بهترین ابزاری که شیطان از اون کانال میخواد انسان رو به فریبه این در روایت داره از سه چیز به شدت بترسید هرس، حب دنیا، حسد البته ترتیبی که در روایت داره هرس حسد حب دنیا میگن حرث اولین لغزش رو در عالم انسانی ایجاد کرد حضرت آدم ابوالبشر در روایت اینجوری داره وقتی ابلیس آمد گفت که تورا هدایت کنم به اون دلالت کنم به شجره خلد به گمان اینکه یک نفعی براش داره به طرف او رفت و لذا رنده شد حسد در ابلیس ایجاد شد وقتی خداوند گفت انی جایلون فلعرز خریفه انسان رو در زمین خلیفه میخوام بگذارم به ملائه گفت سجده کنید حسادت شیطان گل کرد بر مبنای حسادت رنده شد که الالعبد رنده شد مسئله حب دنیا در بچه های حضرت ببخشید. خب به دنیا در ابلیس و این حسد رو باعث شد و حسد در بچه های حضرت آدم بین حابیل و قابیل که زمینه قتل برادر رو به دست برادر فراهم نمود خب ابلیس میداند که در نهاد انسان می حسد رو برانگیزه. می توانه و تحریک کنه، می توانه حب دنیا رو زیاد کنه، می توانه های مختلف رو در درونش رشد بده. پس هر یک از اینا در درون انسان که به وسیله شیطان می تونه تحریک بشه، میشه یک مسیده که جمعش میشه مساید. او وقت امام سجاد علیه السلام داره به خدا میگه: الله هم این نان ای خدا به تو پناه میبریم. از شیطانی که میخاد نزغش رو در ما ایجاد کنه و در این مسیر وعده میده و قرورهی نیرنگ و حیلوازی میکنه که یک امری رو منفعت جلوه بده و مساعدهی یعنی این مسیده ها و عوامل سیدی که به وسیله او میخواد ما رو بفریبه خب حالا اگر این فراز اول فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای هیبده سحیفه حالا اگر وقتی ما میگیم خدایا به تو پناه میبریم این پناه بردن معناش چیه؟ ببینید این توضیح رو مختصر عرض بکنن انشالله ادامه بحث رو در جلسه بعد با هم پی بگیریم که خود امام سجاد علیه السلام در عبارات صحیفه راه رو برای ما هموار کردن و توضیح دادن ما وقتی پناه میبریم مثلا فرض کنید بنده توی یک بیابانی هستم میبینم گرگی پلنگی داره به من حمله میکنه پناهگاه میگیرم یه وقت مثلا پناهگاه من یک اتاقیست میتونم برم تو درشو ببندم یه وقت پناهگاه من یک قاریه برم داخل قار دهانه قارمانهی بگذارم این پلنگ و گرگ نتونه بیاد یه وقتم پناهگاه من یه است دستم میگیرم که او از خودم دور کنم پناه به خدا بردن یعنی اون چرا که خدا قرار داده است به وسیله اون من از شر شیطان نجات پیدا کنم اینا چیه؟ در ادامه بحث انشاء الله با همدیگه بحث خواهیم کرد و سلام علیکم